بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه الله وآله الطيبين طاهرين المعصومين والله تدعمت عالوه المعصومين اللهم راح امکان جعل حجیبیت برای زن یا یه اون وقت احساسی شون مثل حجیبیت شبرگاه از سنم که صحبت یسید به حیبت حجیب و جهل و, و یه سوزی داده شده این موزید راویه دیگر این بحث رو واضح تر اشان الله که بکنیم خود برسا از که کردن مجموعی مسالکی که در حجیت انشاء خبر یا مصادر لن آمده میشه یعنی حجیت بقول خصوص اشکال ظاهری باشه یا حجیت امارات اماراتی که به کار برده شده مجموعی از اقوال احتمالات این یکی جن مواصل یا جن لن این مد نیست اینکه در بابه زن قائل به جن بشه یعنی ظاهرش این است که مثل خبر ظاهر یا وسط اسطوایه مفتی تقدیر بشه باشه اما نه به جعل بشین بگیم صیغه مضارع اماره و صیغه مؤذای اماره میشه یعنی اصطلاحاً هم هم به جعل دادن یا جعل مواصل بدل از صرف توضیحاتش انشاءالا بعد چون بحث اجتماعی جمع و حکمیزاری واقعی در کلماتو استادم تحرزشان اونجا هم باز متحرز بشیم توضیحاتش اونجا از این مشکول بین ماها نیست یعنی بین علماءی ما این رعی قائلی نداره و اوحلاوی هم چهی نیست اصلا بگه خبر زغار بوجته یعنی این که طب خبر زغاری جل بکی میشه ظاهره چیه عدلی زنی البته تو بعض از عدله زنیه بیشه خارش شد این شما به و باز هم در عدله که بیشتر بیشه خارش شد اونجایز که بیشتر در احکام میدن منطقات صرف صرف خارشی که واقعی یاد دارن حالا یکی بشروسی آن اصفاد هر یا به ادبعی مثلا اصفادشو خایل در جن مثلا یکی دک واقعا نمرده باشه به گفتن او آثار مرده در اش اینطور صحیح نیست که جعل وجوه معداری اماره در موضوع خارجی که متأثر از راغیت باشد، الزاماً رد جامعه صدور شده مصاف شخصی گفتند شاید اون موضوع بعد میگن گذشته فعلا من لاحصل مشاهده شده بود و به معنی به خاطر سنت این دیالوگ شوخی ظاهره اشتباهه. در موضوعات سرقه خارجی که شرایط به این نحو بیشتر که احکام و این همون رأی تصویب که اینم از کلم چیلی طرف دار ندارم خب گفه کده شرا دوم در مسائل که از کسانی هستند که قائلا به تکریم کشم چون قائل از این که تکریم کشم من قبل از وارد که بارد احوالا بشم در این حالی که احوالا زیادت میکنیم تو مقام اثباتشو هم به تریدین ها اجمالا میاریم توضیحش برداشو تصمیم کش خلاصش اینه که هجیه درجه نیترین و هجیه در نیست کشف تانگ ذاتی میدونن اگر کشش ناقص بود آبل جعب که مرجعش به تصمیم کشف یعنی در مقام طبول این کاشف ناقص به منظره کاشف تانگ قرار داده میشه ولو کاشف هست درصدیه باشه آمره سر درصدیه میشه خب یه مقدار دلیلش یه مقدار همی ظاهر اون هم مکاتبه ایس لیسه یا نوز را عضوه لحظه مماغی نافت تشکیک فیلما یرمی یعنی هننا سغارتنا این شون کنم دید که در اینجا شک و اضاله کرده یعنی تصویم کشم شما هفت شک ندارید، اونی شک شما رو برداشه این اضاله شک باید تحبودی باشه شما هفت شک ندارید، پس در ایند شما تام حالا آثاری که داره صحبتتی نیست. البته مهمترین نه که به این تفکر وارده چون کشفیت معلوله نیست که قابل جهر باشه. چیزی نیست. یعنی نمیشه خودش رو جهر کرد. رضایشون هم در مورد شد فعاله جهر نمیشه. یعنی شون در جایی که تصاویی باشه، جهل مطلق باشه شارع نمیتونه کاشف خرار بده. اما خودش کاشف باشه شارع میتونه تکیم ن این خلاصه هر ایجاد نمیشه رو اما تصمیم میشه رو کنه. اشکال بیانی که جبر میکنه، داره اگر چند تصریح رو دانیم که هرگز میشود، تفاوتی بین اینی که او اگر از مقوله ای باشه که تعبد بشه و خوره ایجاد مزبط، تفاوتی بینیت ولی این مقوله به صورت تصمیم کشف هم کهی معمولا صد هنگوهای مسای سری مثل که سوم مراد از خودجیت وجوبه عمله مراد از خودجیت وقتی که این کاری کلام خود جده یعنی شما باید عمل باشی البته روی این مسئله لازم میاد که بحث امارات با اصول خیلی بخیوز بشن چون که وجود و عمل هست و عمل کنن چون اصولم عمل هست و عمل هست باید با همجگه خیلی پرگی نکنن و نکتی ایک فرمیه این نکتی اینه که چون در پرد انسان پرد ریگران میکنه کاشف تامه وقتی کاشف تامه شده عملش رو تر بغیر انجام ده شون واضح مثلا واضحه که این مثلا سمه واضحه که این نافه وقتی واضحه بود که نافه انسان انجام ده مثلا اگر نافه بود این کاشف مثلا دکتر به ما داد این سمه در اینجا تحبوت معنیش اینه که شما این رو مثل همون و عمل بکنید که تو در اصلاس قرط عمل میکنید در اینجا هم عمل بکنید برای این وقت شاید بشه به اون حدیث معروفی که سریع سنده همه سریع هم هست راجع به احمد به اصحا که میده به زهنگی میگه من از امام ازکره چیم و نهون سرطان فما عده یا و عدیان فشت محله هما و عطه هما شون ما در باب خبر کاشه به کاشه به ناقصه اینجا خیلی عجیب امام فرمونده فشت هما و عطه هما انجام هم بذاره هما یعنی اگر مثلا ادخ کارت داره ادخ کارت داره ادخ کارت داره و که بهادن جالبست علیه که جالس جالبست نیست آه دیگران بینیش کارت و خاص از به که تو این حدیث آنشان ادهی از در این حدیث در باید خبر تمثل کرده. بله، خب اون اشکال اون اشکال مال هنشی دیارم خود ما مال نایب خواسته مال وکیله بردارم بله خب اونجا هم, هم اونم گفتن که قبول نکردی. اونجا سوال اونجا ما گفتیم مراد به خاطرش بود. نه نه، مش کلا اما خیلی خوب سراتون بعدش چیه؟ الذين نحب که میشه دیگه. می الذي نقول تولاضاهل مادی ها که تشی کهفی ما یاری اننا سوااط ها الذي نقول تو ان و ها و نحملد هم و این هم ایاهه و شما خودمون این براش؟ تو احکام امامت اون اصلا یعنی اموری که مربوط به امامت و وکالت دیگه احکام حجج که نه یعنی چون به عنوان به ما هستند الذین اورثو بنان مفاز ذهب دقیقاً دقت ص مفاز زمان سرنا و نحمد و یاون ترسطه اینا این سر رو به شیعه می رسیم خب کی وکی و که نیسته داریم از طرف امان بگه نه اصلا سرنه که احکام می خب خب چون محل چون می آمدن شما این از کجا جمع می کجا می چیکار چی امام کجا چی گفت مخصوصا چرا دیگه قراره بده این روایت مبارکه که در وقتی صحیح سراغ می‌گیه اون ترجمش در خبر وارد از نه اون انیش مهم نیست خص و وعت هما این قسمت مهمش اینه این اطاعت لزوم عمله این اگر لزوم عمل باشه معنای حجیه دارید لزوم عمل استظهار از اینجا باشه لیکن همیشه که شما برمودین ما معتلیم که این در وکیل خاصه این بحث خبر باهد نیست باشه اون رواهد اون رواهد در اون ناییم کرده اون هم وکیل خاصه به هر حال یک مسلک دیگه مسلک رزوم عمل لزوم عمل هم بد نیست اما انصافاً حجیه قبل از مرحبه رزوم عمله این هم مثلک دیگر و ممکنه حتی آیه نوه هم همینطور استفاده بشه چون داره اینجا اتون خواستمون به نوه تتبین و ان و قومن به جهاله و انتون داره تعلن رفته رو اطابه یعنی رو واقع من آیه نفر هم اگه داره حجره خبر بکنه اون هم بعید میکن لیون دلو قوم هم ولیون دلو قوم هم ازاره جواله این یهدان همه پسندتون یعنی خوب درست بکنیم که ما در اموری که جنبه اعتبار و جهر داره تو خودش را تصور بکنیم تو به اعتبار دو اینکه که لسان مقام اثبات اعتبار بکنیم این همیشه تو ذهنتون باشه یعنی ما باید یه نقوی اعتبار را اولاً فی نفسه تصور بکنیم دوم اینکه مقام تعبیر رو هم در نظر بکنیم یک یه و یک به اصلاح رقصی پلی بین مقام تعبیر و بین مقام واقع اعتباری به اصلاح درست بود. این هم رعی سوم روک چهارم در مسئله رعیتی در چکایه هست که اون تنجیز و تعذیر که حقیقت جعل حجی هست. در صورت حساب منجزه در صورت خطا معصره این حقیقت جهل خب بگیم شاید مثلا لعله همی احضرون رو مثلا اینو معنی کرده باشن چیزی که الان بگیم منجزه در این صاف که الان بگیم یا معذل شاید تو مجموعه ی عذله شد شم و اینکه الان تو زنده نمیان اشکال شده که این خودش حقیقت حجیت نیست این نتیجه حجیتی یعنی بعد از اینکه که یا شاره یا معتبر چیزی رو قرار دار نتیجهش این میشه که اندر اصابه منذر باشه و اندر اصابه معذر باشه این نتیجهش ولذا بعضی آباز حجیت اینجور معنی کردن جعل مثلا, مثلا چیزی برای خسرتیست برای مثلا اون که زنه که نتیجهش منذرگیت و معذریت این یک اشکال اشکال زمان اساسی تر این نیست اشکال اساسی تر است که منجزیت جعل نداره چرا؟ چون خود این زنه خودش طریقه یا علم یا علم یا زن دیگه طریقه خودش این خودش طریقه بود اون منجزی بودن در ساست حسابه لازمه طریقه بودنشه جهر به ای این اگر جعل به قسمتی خورده به معذریت خورده که تو معذوری و الا اگر زرار محلبی آن نقل کرد و خلامش مصادقه با بود من جعل نکردم این رو این طبیعت خود مثلا خبر یه پولیس به واقع ممکنه اشتباه کرده باشی خب نه فایده در بودی نه ببینید اولا دقت بکنید الان من توضیه میدم توضیه هم, هم ببینید دقت بکنید ما در این اصول متاخیر علمای ما خلاصه حرفشون اینه خود دقت رو کنیم یه چیزی توش کاشفی یه هست یه جایی ما کشف نداریم میگه از این دوتا که خارج نیست اگر کاشف داریم اونجا جایی جهر خود خودش کاشفه اما ناقصه با اصلا به تحبیر کامل میشه اما جایی که کاشف نیست کشی نیست اصلا جهر گوجه همه جهر من همه لذا بناشون بیدیم. اگر کاشف باشه جعل میشه اماره میشه تاریخ میشه اگر کاشف نباشه جعل حکم میکنه من که جعل حجیت میکنه حسنش میشه اصل عمالی وقتی شما نمیدونید این ظرف پاکیانه جست در ظرف عدمش علم شما یا جعل اساس رو میکنه پس ما دبرانه هم دائمان در تمام موازی که داریم دو تاست یا کاشف هست، یا نیست نیست میشید جهن رو بسید میگه تو به واقع نرسیدی خیلی رو روشن اگر کاشک بود اونو رو میکنه خود جیهت این نمار کلام حالا اون حقیقت شیعه الان توضیح ای پس این در این جهن یکی از برکات این اصول متحقیل شیعه به این توضیح من دیشه همه سنت هم نگم شبه مرا واضح باشن اما به این توضیی اینا میگن آقا یک کاشف دارین یک گردون که کشف ندارین باید بسید که خالیش می کشف نباشه شاره اگر کاری بخواد میکنه جهل حفت میکنه مثلا دیروز زنده بود امروز نبیرین زنده حفتان شاره میگه زنده حفتی جهل میکنه یا جهل احتیاط میکنه میگه واضح بسر احتیاط من نمیزونم گفتی که این زن مثلا خوهر رضایی من نمیدارد ما میگه احتیاط بکن احتیاط بکن به قطع این احتیاط کردن یک نوجه در ضرف شک یعنی چه احتیاط بکن یعنی این رو بینه که مثلا خوهر رضایی شماست یه خوهر رضایی شماست. شماست. شماست کاشفی در کار نیست یا اساس و تاره یا بقیه اصول یه در شما کاشف داریم اینا ها این تحرید دادن یا کاشف تامه یا ناقصه اگر کاشف تام مشکولشون میخوایی که جل نمیخوایی نمیتردید از من لا تنها لوید از اگر ناقص باشه جعل میخوایییم خلاصه بحث اون وقت چون اونا آمدن گفتن جعل تام خودش بیزات کاشفه جل کشف ناقصم فیگریم که جلی برمیگردنش به کشف تام ولی میتونیم اصلا تقریب مطلب که نظر خیلی واضح یا کاش هست یعنی اگر تجدید جعل حکم میکنه میتون جعل حکم شد میش اگر کاشف باشه و طریق باشه یا طریق تام بازم میگن جعل نمیکنه چون طریق تام ما قائل بودیم که نه در طریق تام هم جعل میخوام کاشف تامه اما بازم جعل میخواد حالا توضیح رو بذارم در طریق هم که خب خیلی واضحه که جعل میکنه چون طریق الاشناه اون بحثی که الان تا حالا مطرح بود که مثلا ما قادم بشیم که مثلا امکان نداره خب این هر تیر بیوزه یه انصافت به ظاهر و نکتهش شه که واقعی مقدماتی رو قبول کرد مقدمات در بین خوبهای اسلام قبول نشده مثلا اینکه احکام تابع مساله و مفاسد به ذاتی باشه اینا خیلیشون قبول ندن اشایر قبول ندن ای نیستیه مثلا اون ام... بله اگر اون مقدماتی در ذهنیشان هست اونا درست بشه تمام بشه با اون اگر و اگر درست میشه با اون مطلب قابل تفصیح پس مبنای دیگر هم مبنای تحضیر و تنجید یا ما نتیجه تو و تنجید این قیلت امکالا اشکال داشته این نتیجه اشکالش هم اینه که مسئله تنجید که جعل میخواد. چون مفروضه کلام این کاشبه طریقه خب اگر رسید به مفروض به قول به منکشه خب دویه دیگر نگرم منکشه خودش بود جنابا دیگه خود این خودش این کاری کرد به من چه من بوده به جناب من چی من بود لذا تنگیز و تحضییر یک مشکل قانونی داره یعنی من این نه دقیق ما بحث و از دو جامعه یکی بحث قانونی و تحمیل قانونی یکی هم بحث رسانه اعتبار و بعد اعتبار این شد که چارتا مسئله از چندتا شده نمیمونم شمایی چه چارتا <تصفح> اول که جره بدر بود بعد که پسیم بود بعد مسئله وجوب عمل بود بعد مسئله تنجیز و تحضیل یکی هم رعی نتیجه تود نتیجه از تو تحضیل حجیل ارازه جلدی نتیجه از تأذیر و تندیزه خود تندیز و تأذیر قابل جلد نیستن این هم به اصطلاح البته این که قابل جلد نیستن هستن اینجا بین پرانتز قدماتون عرض بکنم که در احکام وضعی تأذیر ها مطلبن که قائلا قابل جلد نیستن این چند را از ارز کردن واز در نظر تأکید میکنم اینا مرادشون این نیزه لحظ نمیشه گفت مثلا لا صلاة إلا کتاب فاطرت الکتاب لا صلاة إلا لمن این نه اما که اما اقامت گفت جهل تو فاطرت کتاب جزء از سلام مگنی که روش کار ده ما میگیم شعر قابل جهل نیست اینه خوب در چند بار بخصم خیلی لطیفه و سکرار می کنم مراد اینه که در تحلیل قانونی اصلا جزئیت قابل جهل نیست ولو لفظش هم بیاده. مثلا بگه جهر تو صورتی جزم می نستم مثلا جهر تو نمی نشه قابل جهر نیست دائما انتظار میشه. انتظار به امرو وقتی که نماز با این در جز کن از این امرو بکن انتظار جزیگیت می یعنی حتی لو جعل صورتو جزء عمله حساب. یعنی اینکه و صورتی جزء عمله مثلا. این مفادش اینه که اون صلاتی که منظورم بده، کوچ صورت هست. اون کلی که در صورت هست. این که اگر احکام وضعی قابل جعل نیست، کسانی که اشغال میکنن، مرادشون از قابل جعل نمیگن می یعنی حتی اگر تعبیر کرد مفاد از چیز دیگه‌ای انتظار شده مثلا کسی که, که میگه حجیه رو تعبیر و تنجی میگو موجه قابل جعل نیست ا گفت جهل هجته این مونت بذارو مارده نیست؟ اصلا قابل جعل نیست پس در اثنان صحبت های ما اینم در ذهن باشه خیلی مثلا معمومه اینه اگه گفت جهل این جهل کشف کام مفادش اینه اصلا قابل جعل نیست هجه مه... بلغا؟ اگر به باشه امام که رو بیقوله. خب، اون بلاکولوژی که داشتون می‌شن. یه زمینه ای که چه فایده‌ای اگه تو رو چه اصلا تا با رو کو جزه این کل صلات اینا یعنی <تصفيق> در حقیقت عمر خورده به یک ثلاث معلف عدید این معنی چیست؟ عمر این تحلیل قانونی دارند اصلا عمر رو بکنیم و جزییت نیمخوند جزییت یک مخصومه قانونی که قابل جن نیست جزییت، شرطیت، مانعیت، قاتلیت اینا یک مفاهیم قانونی هستن که قابل شرط نیست، جن نیستن اگر صلاح رو محدود کرد به تهارت از اینجا انتظاره تهارت میکنی اما خود شرطیت تهارت قابل جعل، شرطیت قابل جل یکی از ما هم که محل بحث حجیت آیا موشن شد بازو حجیت قابل جعل هست یا نه اگر حجیت مرناش تنسی نه نمیشه نه چون باز تا گفت مثلا فرسون در اول امر نبود بعد گفت باید توی حتما فاصله تو کتاب بکنی الان که خود امر باید به کلی که از این معلقه اگر نبود امر خوده به یک کلی که این تو چی نیست؟ یعنی امر خوده به این اجزا ب... با بیان خودشون جزیت امر نیخواده امر دائما رو کلی رفته کلی که معلقه از این هستون به اسطلاح اجزایش از خجا از خودش را را ما بنویسی خود جزئیت میشه جعل بکنه. خاطر جوگیرتی که. این یه تحلیل قانونی جزئیت قابل جمعی نیست. مثلا اگر گفت خودش نیست میشه. و مرا این خودش نیست. اگر میخواد جزء بشه جای عام میخواد که خلاصی رو شوکره. نه هم رو به کل بخوره. به وقتی نکته نفتر... به بخش این وقت احکام انتظاری یعنی احکام وضعی انتظاری مراد مرادی است که مثلا به لحظی نیست تو لحظی شما سنگی که قابل چرم نیستن جدیگی از چردیگی از قابل جرم نیستن اما نه به هم شده بعد نیاوردن آموزه‌مونی کل نکشیدیم. یعنی می‌تونیم اگر نماز می‌خویم توی کیش فاتر، اول فاتر در کتاب نبود خوب در تیغندار میگه فاتر در کتاب. این این که آم کودت نمازی کیش فاتر کتابه. ندیشیدیم. دکتری خود جدی بشه. آمی نبودی، اگر فاتر بگی کتاب نبود، پس اول مبعث نبود. نماز بخونه بی فاتر کتاب پس تا آمد گفت نا آقا از الان پاتر کتاب از الان یعنی چی؟ یعنی ان من با اون سلاف که شده پاتر دو از دوتو من این ام اما اون از بر از بر اما اون هم اش میکنه میاد ده تا جوله در نظر میده یک عمضه شو میده بحث خوب دراست. این ازراف خود شده. دنسه نکته اینه که آیا حجیت چه مفهومیه اصلا جعزشی میخوره این مقابله به حجیتی ما الان میگی در قرآن کریم عنوان منبله لغنزه را کنگیری و منبله منبله این حجه تنه جد منبله این, منبله این, منبله این آیا این منبله قابل جعله یا نه انتظار میشه این میشه چهار پنج تا قول هر چه خدماتو دستهینه خود ما خود حجیت قابل جعل مشکل نداره جز احکام ورعی است که قابل جعل مثل خود ملکیت قابل جعل اونجا بود برضه گفتن ملک قابل جعل نیست انتظار میشه از احکام نه مشکل نداره این خود قابل جعل باشه لطیف مفهومش ایده از تصرفات باشه بحث دیگه میاد که انتظار میشه انتظار می نیست حالا به هر حال مرحل. حالا یواشین توضیحی که میزه ارز کردیم خیلی ما رو به محروب میرسونیم نتیجه چرا چرا ما ارز کردیم از نظر قانونی ای داریم به نام تنجز چه تنجز کبراد چه نست تنجز صحبات و حقیقا به تنجز انتقاش صورت در ذهن نه لزوم عمل اون مرحله برده اون تنجز نیست اونی که الان محل کلامه ما در اصول کلا روش برسیم این معظم اصولیه ما رویه آیا این صورتی که در ذهن آمده بهش مطلب اعتماد بکنه تنجز حاصل میشه مثلا گفته آقا من برم تنجز شده شد که مثلا نماز جمعه واضعه میگن از کجا این صورت در ذهن تو آمد؟ میگه پلان فرقی پنج رو از فوق ها گفتن میگه این پنج تا کافی میتواردن ازن اگر از روایت گرفتی اگر از آیه گرفتی آیه باید طریق باشه دلیب باید به مجرد که فرن گفتن این صورت ذهنی کافی لذا ما حمیقت حجیت تو عبارت از این است که انها این صورت ذهنیهی که برای انسان نسبت به جرد و نسبت به تکالیف و نسبت به اعتبارات قانون بدا میشه راجی به بحث میکنی بحث ما اینه در این هم شده تنقیضی که حقوق دیگه به این مرحله ثابت بشه یعنی مرحله ایش به حساب قبل از عمل دیگه اون وقت دیگه اون بر مراجع اون مرحله ای که بعد از ابلاغ شاره و قبل از عمل مکلف یا مرحله وصول و مکلفتش می شه یا مساله ارتباط مکلف به حکم است چون یک مرحله هست ملاقات شروع کردنش صادقانه یه مرحله ام ابلاغه یه مرحله جهل بعد ابلاغه بعد یه مرحله که مکلف رابطه با حق این مرحله رابطه مکلف با اله نشون شد درست نشد این مرحله ممکن است حتا واقع محسوس باشه مثلا احکام ظاهری مثلا مطابق باشه وقتی این مرحله ای هم میتونه فیلی صغرا کار بکنه همون کبرا از در صغرا آزتن واقع مطرحی شارم میگه اگر خبر واحد هم گفت این از این سو داره. یعنی اون صورت ذهنی شما که این مایه خمره اگر از قول آمد شارم میگه من تنجز اگر از قول آزل آمد شارم میگه من تنجز نمیدینم جهر تنجزم. میگه این صورت این, اینجا این سره کار اینجاست سره کار اینجاست که این مرحله قد کردید کجا این مرحله قابل جرد یا این انتظار میشه مثل تنجیر و تعدیره ما کار به تنجیر و تعدیر یعنی اون مراهل بعدیشه ما به ذهن میاد، میاد لقون ذرکون بهی و من دلق این جره و جیر عباره از که بلوغ و توت توت تحبیر قرآنی خیلی برساس خوش رو بگیم ارتباط مکلف با مختلف بلو بیشه می یعنی در القرآن و من بلن هر کسی که قرآن برو رفید من بلن این بلو انتنازی رو این چه علمان ما به جهه قرآنی شتاق و وصول ملاحظه کردیم مهم تحبیر قرآنی در مکلف تحبیر خب قرآنی, قرآنی بیشیم بلو قلحق لَاون لا درکو مرحله ارسال رسوله لَاون لا درکو من بلن مرحله تنجده لَا اللهم یهزرون مرحله ارساله مرحله تنجده حالا دهتی اینه ما چیزی تنجده تحضیلیم بکنیم یعنی ما به جهی عمل عمل مرحله متأخره. بیم با عمل تکسسییه بکنیم بیا می ببینید ب کاشف رو تام بکنیم اصلا نکته ای میخواد کاشو تام بکنیم ممکن هستی که به همین صورت ذهنی من اکتفا می کنم و لذا اگرم خوب دفتوه تغییرویر من کم نکته داره میگهین تجهنی اکتفا کردن لازم نیست تو رو روی هیچ سوال بکنید تا قی یعنی یا مطابق نه فقط تبدیی واقع و نه من به این صورت اتفاع می و لذا جعل و جید در حقیقته که خوب دفت اتفاق به اون صورت ذهنی من بگی این صورت ذهنی که مثلا زباردتو گفت اکتفاق میتونم نمیخواد تا مدینه از من سوال بکنی پیغمبر افراد رو شما شه بعد بگی این صورت ذهنی که رسول من گفته اکتفاق مرحوم سروندو در از کلمه خب مثال میزن میگه پیغمبر میمتونه بگه می شما هرچی از من برای شما الزامه باره که این نماینده من و رسول من فرساله من گفت اون میشه گفت اون میشه مشکل داده اون میشه مشکل استحاله که شید ما آمدیم هرکمون اینه که این مرحله این مرحله‌ای مرحله که انسان اون صورت قبول بکنه حالا مثلا من یه حدیث نیخونم چون یه بحثه علیه که بود شکل کنی افتا یونسید نردالرحمن سقتون ببینید آخدا انها معالمی دینیم این آخدا همه این, این مرحله عمله این تصمیم کشفه یا که اون معالم دینه نه که باید اعتباد بشه چه باشه اما اعتباد معالم دین اصول باشه احتمال رو داره چاکیب های کلی خیل باشه مثل خیاسوی ها یا همش باشه احتمالش قدیه که همش باشه اما اینکه مثلا هر سوی مثلا مثلا دیا از در این معالمدی نیست مورویدی نیست یا معالمدی ده دیگر احتمال داره همه کلی چون یه نداره ها همه به خیاسه از اون طرف هم از اون مزاری در کلام نرداره شده یه احتمال داره که ی احتمال داره مورد مسائل کلامی باشه، یه احتمال داره کلامی و اصول فرق باشه سختی است، یه احتمال داره کل، چون کلی مثل کتاب خونی است که نزور نزوره، چون نادر شد توجه شده من اولی چکامه، خونی است که نزور ماره نزوره این میل این میل علی اصول فرو، دو تا اصوله فرو سه سختی، این کتاب خونیه. یکی کلامه یکی اصول فقه یکی خود فقه باید این از شد حالا ممکنه این معارضی مثل این باشه حتی بالاتر اصلاف مثلا سیاست اداره هم کلا این آخوضا یعنی چی این آخوضا انها معالمی اگه اگر باید مال نه این اگه کنی تفسیر بخونی داره حدیتی یعنی چی که این تفسیر میکرد این این رسوم عمل مثلا آن نه عمل بکنن مثل علامی احلا بکن یا این محاد بگه این می رو که یونوس میگه این همون حکم الهی این صورتی رو کنم از راه یونوس به درس آمده رو این اعتماق بکنن یعنی تنجیم خب کاری این یعنی ایمان یعنی اون معالم دین در گفتاری اونوسی متنجز چرا او یکی از افرادش رو نه دیگه این یعنی ای خوب دقت کردید چون شده کن. من احتمال میدم این عبارت خیلی گویاه باشه برای را همون مرتبه کندجاست این که عمل نیست توش حسن و نیست از آق خدا همه ما آلم دینی خوب این ما آلم دین رو از رو بگیرن و ندا هم اجزهی گفتن حقیقت تقریدم همینه عمل نیست امزه لزوما اثر صلاه میشه این چیزه رساله ارمنی تقییدی رو اعص میشه بنا بگردید ببینید این تنجذ پیدا میکنه در مراد است مثلا حجیت اینه اثر ابن موسی بن عبدالرحمن چتون اخو و انهم عالم دینی آره قال السلام نه حالا این شینی موقع تفسیر قاضی میگویند سوال این تفسیر قابل توجیه است من به ذهن من که خود این روایت یک شاهد گویاری برای تصیب آنچی هست از در دیت